حکایت جالی ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر این نادان نبودی، کار وی با نادانان به دینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی با سبکسا. اگر نادان به وحشت سخت گوگد، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند، مویی، همیدون سرکشی بازرم جویی، اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد، بکسلانند، یکی را زشت خویی داد دشنام. تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام، بتر زانم که خواهی گفت آنی که دانم ای به من چون من ندانی.